ازیزان پولس رسول مشکلی داشت. تعدادی کمی از مبلقین و معلمین در مورد پیام انجیل توسط تعلیم یک کار بر اساس انجیل بایست گمراهی دیگران میشن. بعضی از اعضای کلیسای قلاطیه توسط همین موضوع لغزش خوردن. به کلاس دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. این یک کلاس بررسیه که ما تمام کتابهای کتاب مقدس رو از پیدایش تا عهد جدید بررسی کردیم و حالا به رسالات کسی رسیدیم که نصف عهد جدید رو نوشته. در این کلاس ما باید رسالات پولست رو که با قاطیان شروع میشه بررسی کنیم ما حقایق بسیار عمیقی رو یاد میگیریم ولی باید این حقایق رو در زندگی روزانهمون به کار بگیریم. این دور از کلاس ما ده جلسه رو به همراه داره که از طریق این نامه ها چیزهای زیاد و، دوست داشتنی رو یاد میگیریم. من شما رو تشویق میکنم که همین حالا برنامه کنید که نه تنها با ایمان این جلسات رو دنبال کنید و اونها را از دست ندید بلکه دیگران رو هم دعوت کنید تا با همدیگه به مطالعه کلام خدا بپردازیم. حالا به معلم خودمون انجیل رسول ملحق میشیم و درس امروز رو گوش میدیم. اول از همه ما شاهکار الهیاتی پولس. یعنی نامه او به رومیان رو بررسی کردیم بعد شاهکار الهیات شبانی او نامه اول قرنتیان رو بررسی کردیم الهیات شبانی مربوط به تمام مشکلاتیه که هر روز شبانان به عنوان یک شبان در موردشون راهنمایی میدن بعد در آخرین کلاسامون ما رساله دوم پولس به قرنتیان رو بررسی کردیم این یه شاهکار با موضوع خدمت بود این یک نامه فوق‌العاده بود که پولس رسول در درون به اتهامی که به او زده بودند پاسخ میداد. همونطور که میدونید بعد از اینکه قرنتیان نامه اول رو دریافت کردند، به پولس اتهام زده بودند. در اولین نامه پولس به قرنتیان، او اونها رو به خاطر مشکلات بزرگی که داشتن سرزنش کرده بود. پولس تلاش کرد تا مشکلات اونها رو حل کنه. قرنتیان نباید به منطق حل کردن مشکلات پولس حمله می‌کردند. مشورت بناکننده او بسیار عمیق و الهام گرفته از روح خدا بود این برای من عجیبه که اونا به منطق پولس در نامه اول حمله نکردند اونها به خود پولس و اعتبار او حمله کردند نتیجه حمله به اعتبار رسالت پولس شاهکاری در باب خدمت و اعتبار خادم به ما میده وقتی دوم قرنتیان رو تمام می کنید حداقل اطمینان حاصل کنید که چیزی رو که پولس در دوم قرنتیان از وظیفه آماده سازی، اعتماد، پیروزی یک خادم، تبدیل و شفافیت خادم، فشار و آزمون خادم، سفتی و محبت یک خادم و در نهایت برتری خادم میگه درک کنی. تحت این اناوین پولوس یک نوشته فوقلاد عمیق و الهام گرفته حقیقی در مورد خدمت به ما میده. من از شما خواستم که به طور خاص باب هشت و نه رو مطالعه کنید. جایی که شما دو باب بزرگ با موضوع مباشرت دارید که کمتر در کتاب مقدس می توانید اون رو پیدا کنید پولس از فیلیپی به قرنتیان نامه مینیویسه کلیسای فیلیپیان کلیسای مورد علاقه پولس بود کلیسایی که از او حمایت می کرد کلیسایی که برای او چدیه می فرستاد کلیسایی که برای او این امکان رو فراهم می کرد تا به کلیسای قرنتیان بدون هیچ مشکلی خدمت کنه در باب هشت و دوم قورنتیان پولس الگوی کلیسای فیلیپی رو به قرنتیان معرفی میکنه تا اونها هم از اون الگو بهره بگیرند. در این قسمت پولس قرنتیان رو به محبت بزرگی تشویق میکنه که اونها هدایای خودشون رو برای مقدسان در رنج اورشلیم شلیم آوری کنن در این باب بزرگ همونطور که پولس به قرنتیان الگوی خوبی را برای هدیه دادن معرفی میکنه مشاهده میکنید که پولس در مورد توانایی و گشاد دستی فیلیپیان در مورد هدایا چی میگه؟ همینطور مشاهده میکنید که پولس چطور در مورد کیفیت هدایای فیلیپیان سخاوت اونها در بخشش و مخصوصا صداقت اونها در هدیه دادن صحبت میکنه؟ مشاهده میکنید که پولس در الگوی هدیه دادن و سرمایه میگه باید امین بود. این یک پیغام بزرگ برای کلیسای امروزه است. پولس در این محبت بزرگ جمعوری هدایا برای مقدسان در جفای اورشلیم شرکت میکنه. او میگه و اما در خصوص جمعوری هدایا برای مقدسان شما نیزان چرا که به کلیسای قلاتیه گفته انجام دهید. روز اول هر هفته هر یک از شما به فراخور درآمد خود پولی کنار گذاشته پسانداز کند تا به هنگام آمدنم نزد شما لزومی به جمعوری هدایا نباشد. وقتی آمدم و افراد مورد تعیید شما معرفی نامه‌هایی خواهم داد و آنان را با هدایای شما به اورشلیم خواهم فرستاد. اینجا مسئولیتی وجود داره این یه هدیه بزرگه و باید امانتی در رابطه با این مسئولیت وجود داشته باشه. میخوام دست دستکم یه بار دیگه قبل از اینکه قرنتیان رو ترک کنیم نگاهی به اون افراد شریر قرنتوس بندازیم. در پایان دوم قرنتیان پولس میگه و نیز بیم آن دارم که چون نزد شما آیم خدا بار دیگر مرا در حضور شما فروتن سازد و من به خاطر برقی که در گذشته گناه کرده و از ناپاکی، بی و عیاشی خود توبه نکرده ان، اندوهگین شوم. این وضعیه که کلیسای اولیه در قرنتوس داره. تعجبی نداره که آپولوس بر این باور بود که این خواست خدا نیست که او به اونجا بره. پولوس گفت که دوست داره آپولوس به اونجا بره ولی آپولوس فکر نمی کرد که این خواست خدا باشه که او به اون کلیسا بره شاید هیچ کس دلش نمیخواست به اون کلیسا بره پولس با این چالش بزرگ صحبتش رو تموم میکنه خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه خود را محک بزنید آیا در نمی یابید که عیسی مسیح در شماست مگر که در این آزمایش مردود بشوید در ترجمه دیگه ای پولس میگه خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمان حقیقی هست یا نه شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست مگر اینکه در این امتحان رد شده باشید این یک لحن تنده ولی وقتی بدونید اوزا در کلیسای قرنتوس از چه قرار بوده نباید انتظار داشته باشید که پولس با این مردم به زبان دیگه ای صحبت کنه ما دو نامه عمیق از پولس به این کلیسا داریم پس میتونیم از خدا به خاطر قرنتیان تشکر کنیم اگه به خاطر اونها و تمام مشکلات اونها نبود نمیتونستیم این شاهکار زیب و الهام گرفته رو داشته باشیم. حالا همونطور که ما در نامه های پولوس پیش میلییم به رساله دیگر پولس می رسیم. ما به رساله پولوس به غلاطیان می رسیم. رساله پولوس به غلاطیان یکی دیگه از نامه هاییه که توسط پولوس رسول نوشته شده. من رازی رو با شما در میون میذارم. حتما قبلا هم از من شنیدید که در تمام این ش کتاب، از کتاب مقدس من بیش از همه به رسالات پولس علاق مندم. پولس های خیلی عمیقه تمام شست کتاب کتاب مقدس الهام خداست. اما منطق الهام گرفته پولوس باعث شده که این نامه های هنوز عملی باقی بمونند. من همه اونها رو دوست دارم. تمام اونها با هم فرق دارند. او در نامه چیزهای متفاوتی رو می نویسه. حالا ما به نامه دیگری از پولس می‌رسیم که نوعش فرق می‌کنه. اینجا می‌تونیم بگیم که این نامه عاطفی پولس رسوله. وقتی که پولس نامه خودش به غلاطیان رو می‌نویسه، حسبانی بود. ما به این می‌گیم خشم عادلانه. زمانی که پولس خیلی ناراحت و احساساتی بود، این نامه رو می نویسه. آیات ابتدایی این نامه رو با آیات ابتدایی نامه فیلیپیان که خیلی اونها رو دوست داشت، با آیات ابتدایی نامه به قرنتیان که اونها رو مقدسین خطاب میکنه مقایسه کنید. حتی در نامه به قرنتیان شما بینید که پولس نامش رو با محبت، دوستی و مشارکت در انجیل شروع میکنه. با این حال این در مورد قالاتیان صدق نمیکنه. در اولین آیات قالاتیان شما چیزی را پیدا نمی کنید که بوی محبت بده. چیزی در مورد مشارکت در انجیل نمی بینید. یا سمیمیت یا اینکه با هم همدل باشید. یا کلاً چیزی مثل این نمی‌بینید. پولس غالباً وقتی نامه ای به کلیسا هامی بنویسه، به راهنمایی در مورد مشکلات می‌پردازه. همون که پولس به می می‌نویسه، در اون ناحیه فقط یک کلیسا وجود نداشت. تمام اون ناحیه رو او بشارت داده بود. او باور داره که مشکلاتی که در موردشون راهنمایی کنه خیلی جدیتر از مشکلاتیه که او در قرنتس شنیده و در موردشون به قرنتیان نوشته بود. مشکلاتی که در کلیسای قرنتیان وجود داره، مشکلاتیه که اکثر خادمین با کلیساهای نوبنیاد در فرهنگهای بیگانه داره. خادمی اینو اینطور توصیف میکرد. معمولاً بچه ها همیشه خرابکاری می‌کنن. همونطور که شما نامه پولس به گلاتیان رو میخونید خودتون میتونید تصور کنید که چه اتفاقی در کلیسای گلاتیان رخ داده. پولس به این ناحیه رفت و انجیل رو به گلاتیان موعظه کرد. انجیل پولس انجیل عیسای مسیح بود. اینکه او با مرگ خودش بر این امکان رو فراهم آورد تا خدا شما رو نجات بده. ایمانداران به انجیل عیسی مسیح با هدیه ایمانی که خدا به اونها داده میتونن نجات پیدا کنند. تمام این نتایج از فیض خداست که عیسی رو به جهان فرستاد تا از طریق او نجات پیدا کنیم. به قول پولس نجات از طریق ایمان و فیض به دست میاد نه چیز دیگه ای. یه بار شنیدم که کسی فیض رو اینطور توصیف میکرد. عیسی مسیح با هر چیزی جمع بشه حاصلش میشه هیچ چیز. ولی وقتی که عیسی مسیح با هیچ چیز جمع بشه، حاصلش میشه همه چیز. حالا پولس بر حقیقتی تاکید میکنه که نجات ما برای اینه که کارهای خوب بکنیم و کارهای خوب ما نشانه ایمان ماست. با این حال به نظر پولس این ایمان ماست که ما رو نجات میده نه کارهای ما. بعد از اینکه پولس انجیل نجات رو بشارت میده، نجاتی که توسط فیض در راستای ایمان به دست میاد رهبر یهودیان کسی که از طریق موعظه پولس ایمان آورده بود به غیر یهودیان میگه حالا چیزی که پولس به شما گفته درسته اما شما نمیتونید بدون خطنه کردن و بدون نگه داشتن احکام موسی نجات پیدا کنید اونا تلاش میکردن تا قوانین شریعت موسی رو بر غیر یهودیان تحمیل کنند وقتی که پولس از اتفاقی که رخ داده بود آگاه میشه و بیشتر ایمانداران غلاطیه حقیقتا ختنه شده بودند پولس با عصبانیت زیاد و به دست خودش این نامه را مینویسه. گوش کنید که پولس چی نوشته و مشاهده کنید که چقدر رو عصبانیه. از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آور، بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده زنده‌گردانی رسول شده است. تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای گلاطیه درود میفرستند، خدا پدر ما و ایسای مسیح خداوند ما فیض و آرامش به شما اتا فرماید. همان عیسی که جان خود را برای گناهکاران ما داد تا طبق اراده پدر ما خدا ما را از این زمانه شریر برهاند. خدا را تا به ابد جلال باد آمین. این تمام سلامیه که اونها از پولس دریافت میکنند. برای پولس این سردترین سلام و دروت ها هست. پولوس پیام نامش را اینطور شروع میکنه. در شگفتم که شما بدین زودی از آنکه شما را به واسطه ی فیض مسیح فراخوانده است روی گردان شده به سوی انجیلی دیگر میروید. البته انجیلی دیگر وجود ندارد اما کسانی هستند که فکر شما را مخشوش می سازند و برانند که انجیل مسیح را تحریف کنند. حالا اینجا یه قسمت قوی رو می بینید قسمتی که باعث قوی شدن نامه پولس میشه اینه. اما حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان، انجیلی غیر از آن چه ما به شما بشارت دادیم موعظه کند ملعون باد در یونانی واژه‌ای که پولس استفاده کرده واژه لعنت هست در ادامه همین متنی که پولس نویسه او میگه چنان چه پیشتر گفتیم اکنون باز می گویم اگر کسی انجیلی غیر از آن چه پذیرفتید به شما موعظه کند ملعون باد چیزی که پولس میگه اینه تنها یه انجیل وجود داره که من اون رو وقتی که در اون منطقه بودم بشارت دادم حالا کسانی که از خدمت من پیروی میکنند انجیل دیگه ای رو موعظه میکنند انجیلی که تحریف شده است وقتی که پولس به فیلیپیان می مینویسه او در زندان بود و از زندان میگه در اینجا کسانی هستند که از برکت بودن من در زندان بشارت انجیل رو شنیدند شاید او عقیده های متفاوت جزی با آنان داشته شاید او راهکار یا روشناسی داشت که اونها با اون موافق نبودند و هنگامی که اونها اینها رو در زندان شنیدند فکر کردند که خوب حالا ما آزاد میشیم و بشارت میدیم و اون رو به روش خودمون انجام میدیم وقتی که پولس اون رو شنید گفت مهم اینه که به هر صورت مسیح موعظه بشه. حالا این به این خاطر بود که اونها بشارت انجیل رو انجام میدادند. شاید انگیزه اونها خوب نبود اما اونها به هر حال انجیل رو بشارت میدادند و پولس گفت اما چه باک مهم اینه که به هر صورت مسیح موعظه شود چه نیت درست باشد چه نادرست و من از این بابت شادمانم اما اینجا وضع فرق میکنه اونها انجیل اشتباهی رو موعظه میکردند اونها انجیل تحریف شده ای رو بشارت میدادند اونها انجیلی که مد نظر پولس بوده رو موعظه نمی کردن. او دو به اونها میگه اما حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه به شما بشارت دادیم موعظه کند ملعون باد چیزی که پولس میگه اینه تنها یه انجیل وجود داره که من اون رو وقتی که اون منطقه بودم بشارت دادم حالا کسانی که از خدمت من پیروی میکنن انجیل دیگه ای رو موعظه میکنن انجیلی تحریف شده است حالا اینجا لحن تندی از پولس میبینید چیزی که او اینجا در موردش صحبت میکنه ارتداده البته که پولس تاریخ عبری رو میدونست اولین معزهی که پولس در اعمال رسولان باب سیزده می کنه، پر از تاریخ ابریه. اگه در بررسی احد عتیق با من بودید، می دونید که هر کسی که تاریخ ابرانی رو بدونه، می دونه که ارتداد گناه وحشتناکیه. ارتداد یا اپستاسی یعنی جایی بیستید که قبلا بودید. آپو که اول کلمه ارتداد یعنی جایی که قبلن بودید و قسمت دوم کلمه یعنی ایستادن. در پایان کتاب یوشا فرزندان اسرائیل تغییر موزه میدن. اونها میگند که خدا اوله و میخوان که به خدا خدمت کنن. بعد در کتاب داوران اونها باز تغییر موزه میدن که با موضع قبلی که اتخاذ کرده بودند متفاوته. اونها در مقابل تعهدی میستند که در پایان کتاب یوشا اون را قبول داشتند. در کتاب داوران شما دوره ای از ارتداد رو میبینید. اونها هفت بار در اون تغییر م همچنین شما توضیحاتی از تمام عواقب منفی وحشتناکی دارید که در اثر این ارتداد و تغییر عقیده دادن بر اونها نازل میشه پولس ارتداد رو مثل سرطان روحانی میبینه که بدتر از تمام مشکلات در قرنتوس هست. پس همون طور که پولس نامه خودش به گلاتیان رو مینویسه شروع به راهنمایی در مورد انجیل تحریف شده میکنه این روشیه که پولس با انجیل تحریف شده برخورد میکنه این جاییه که پولس اطلاعاتی از بیوگرافی خودش رو به ما میده. در آیات یازده و دوازده باب اول پولس مینویسه ای برادران، میخواهم بدانید انجیلی که من بدان بشارت دادم، ساخته و پرداخته بشر نیست، زیرا من آن را از انسان نیافتم و کسی نیز آن را به من نیاموخت، بلکه آن را از طریق مکاشفه عیسی مسیح دریافت کردم. اینجا پولس به ما میگه که پسر خود را در من آشکار سازد. تا بدو در میان غیر یهودیان بشارت دهم در آن زمان با جسم و خون مشورت نکردم و به اورشلیم نیز نزد آنان که پیش از من رسول بودن نرفتم بلکه راهی عربستان شدم و سپس به دمشق بازگشتم به عبارت این رو با دیدگاه انسانی نگاه نمیکنه او میگه به اورشلیم نیز نزد آنان که پیش از من رسول بودن نرفتم بلکه راهی عربستان شدم و سپس به دمشق بازگشتم حال ما نمیدونیم که او قبل از اینکه به دمشق برگرده چقدر در عربستان مونده با این حال بعد از تجربه راه دمشق پولس دمشق رو ترک کرده بود و برای مدتی به عربستان رفته بود و بعد دوباره به دمشق برگشته بود در آیه بعدی پولس میگه سپس بعد از سه سال من به اورشلیم رفتم بعضی از پژوهشگران اعتقاد دارند که او سه سال رو در عربستان سپری کرده و اگه این درست باشه به این معنیه که پولس بیشتر وقتش رو در بیابان عربستان با مسیح قیام کرده سپری کرده. در این زمان او شاگرد مسیح بود و اونها به مدت سه سال با هم در زمین سفر میکردند و با هم کلام خدا را مطالعه میکردند. با این حال پولس میگه که بعد از سه سال سرانجام به اورشلیم رفتم تا پتروس را دیدار کنم و پانزده روز نزد او ماندم اما از سایر رسولان به جز یعقوب برادر خداوند کسی دیگر را ندیدم. پولس ادعا میکنه که مسیح قیام کرده رو دیده. اون میگه که مسیح قیام کرده رو در راه دمشق دیده. و زمانی که در عربستان به سر میبرده، شاید سه سال رو با مسیح سپری کرده. برای من جالبه که وقتی پولس سرانجام به اورشلیم میره، دو نفر هستند که میخوان شخصی رو ببینن که مسیح رو بعد از رستاخیزش رو در رو و به طور شخصی دیده. در اول قرنتیان باب 15 پولس میگه که بعد از رستاخیز مسیح، او به پتروس و یعقوب برادر تنی خودش ظاهر شد برادر عیسی یعقوب هنگامی که عیسی با رسولان به سفر میرفته ایماندار نبود ولی بعد از رستاخیز مسیح و ایماندار میشه شاید به همین دلیل که عیسی به یعقوب ظاهر میشه پولس بعد از اینکه سه سال رو در دمشق و عربستان گذرونده میخواد دو نفر رو ملاقات کنه که مسیح بعد از رستاخیزش خودش رو به اونها ظاهر کرده پولس میخواد یه سری چیزها رو با پتروس و یعقوب چک کنه بعد پولس نویسه بعد از اون او به سوریه و سیسیل میره او میگه کسی من رو در اورشلیم ندیده تا اینکه دوباره بعد از چهارده سال به اورشلیم رفتم او این رو در آیه یک از باب دوم به ما میگه حالا یادتون باشه پولس به ما میگه که تمام این حقایقی که در نامه خودش نوشته از عیسی الهام گرفته زمانی که اونها با هم در بیابان عربستان بودند در آیه بیست از باب اول پولس مینیویسه در حضور خدا به شما اطمینان دهم که آنچه می نویسم دروغ نیست. گفتم که وقتی به تجربه تبدیل شدن پولس نگاه می کنیم، پولس به شما انتخاب زیادی نمیده باید بگیم یا او دروغ میگه یا او یکی از بزرگترین معجزات عهد جدیده. او نصف عهد جدید رو نوشته. وقتی که ما انجیل یوحنا رو بررسی می کردیم، به شما گفتم که سی لوئیس به ما میگه که عیسی انتخاب رو در مقابل ما گذاشته. یا عیسی دروغگو بود یا اینکه باید بگیم عیسی دیوانه بود یا اینکه بگیم عیسی خداوند بوده و به دنبالش راه بیفتیم قبل از اینکه به بررسی خودمون ادامه بدیم شما باید تصمیم بگیرید که آیا به پولس باور دارید یا نه آیا پولس یک دروغگو بود یا اینکه دیوانه بود و یا اینکه پولس تمام این حقایق عمیق رو که در نامه‌هاش با در میون می‌ذاره از عیسی الهام گرفته این بهترین وقتیه که شما موضع مناسبی در باور به پولس اتخاذ کنید همونطور که شما این نامه‌های عمیقی رو که پولس نوشته میخونید، اگه با خودتون فکر کنید این سوال براتون پیش میاد او از کجا این همه اطلاعات گرفته پولس یکی از دوازده شاگرد عیسی نبود در نامه خودش به غلاطیان پولس به ما میگه که او در اورشلیم به مدرسه علوم دینی نرفته در قسمت ابتدایی او به اونها و به ما میگه جایی که تمام این اطلاعات رو به دست آورد تا با ما در میون بذاره کجاست. او می مینویسه از پولس، رسولی که در حقیقت نه از جانب انسان هاست و نه واسطه ی انسان، بلکه به واسطه عیسی مسیح و خدای پدر است که او را از مردگان برخیزانید. بعد در آیه 11 می نویسه ای برادران، میخواهم بدانید انجیلی که من بدان بشارت دادم، ساخته و پرداخته ی بشر نیست. زیرا من آن را از انسان نیافتم. و کسی نیزان را به من نیاموه، بلکه آن را از طریق مکاشفه ی مسیح دریافت کردم. واعظینی مثل من، کسانی که کتاب مقدس را تعلیم میدن، میگن من خادم انجیل هستم، من خادم انسان ها هستم و توسط انسان ها انتخاب شدم. انسان هستم چون برای انسان ها مقرر شدم. بقیه انسان ها دستشون را رو روی من میذارن و این واقعیت رو تصدیق میکنن که خدا منو برای خادم بودن مقرر کرده. شما صدای منو میشنوید مثل استادهایی که داشتم مثل دکتر جی ورنون مکی و خیلی های دیگه که به من کتاب مقدس رو تعلیم دادند پس چیزی که من به شما تعلیم میدم از انسان هاست و برای انسان هاست اما پولس وقتی به غلاطیان مینویسه میگه از پولس رسولی که رسالتش نه از جانب انسان ها و نه به واسطه ی انسان بلکه به واسطه عیسی مسیح و خدای پدر است که او را از مردگان برخیزانید به این وسیله پولس میگه که اون چیزی رو که دریافت کرده تا بشارت بده از طرف هیچ انسانی نیست و اون رو توسط هیچ انسانی تعلیم نگرفته. پولس به ما میگه که او توسط هیچ انسانی برای این کار مقرر نشده، بلکه مستقیما توسط وحیی که از طرف عیسی مسیح دریافت کرده. پولس میگه من توسط عیسی مسیح شاگرد شدم، عیسی مسیح خودش منو تبدیل کرده و عیسی مسیح منو مقرر کرده که یک شاگرد باشم. در باب دوم پولس به ما میگه که بعد از سال او به اورشلیم رفت و با تمام شاگردان ملاقات کرد. او میگه که با وحیی که دریافت کرده به اورشلیم میره. به این معنی که روح او رو به اورشلیم هدایت کرده. شاگردان میدونستند که پولس در راه چون روح به اونها هم گفته بود که پولس داره میاد. وقتی که پولس با شاگردان یعقوب، پتروس و یوحنا دیدار میکنه به ما میگه پس چون یعقوب و پتروس و یوحنا که مشهور به ارکان بودند فیضی را که نصیب من شده بود مشاهده کردند به من و برنابا دست رفاقت دادند و توافق شد که ما نزد غیر یهودیان برویم و آنان نزد یهودیان این خیلی جذابه اول از همه ما این سوال رو داریم چطور پولس به شاگردان ثابت میکنه که او هم مثل اونها شاگرد مسیحه وقتی پولس مینویسه پتروس یعقوب و یوحنا کسانی که ارکان کلیسا بودند فیزی را که نصیب من شده بود مشاهده کردن منظور پولس چیه شاگردان چه چیزی رو در پولس دیدن که توجهشون به اون جلب شد و فهمیدند که او هم رسولی مثل خود اونهاست کلمه کاریز یعنی فیض وقتی که فیض در زندگی شما کار میکنه تبدیل میشه به کاریزما رسولان حتما باید ثمرات روح رو در پولس میدیدند اونها باید چیزی کاریزماتیک رو که نشون دهنده حقیقت فیض در پولس بود دیده باشن فیزی که روح القدس بر پولس قرار داده بود درست همونطور که روح القدس در اونها این کار رو انجام داده بود شاگردان سه سال رو با مسیح سپری کرده بودند و پولس ظاهرا ادعا کرده بود که او هم سه سال رو با مسیح سپری کرده شاگردان چیزهای زیادی رو از مسیح میدونستند. پولس هم باید چیزهای زیادی رو با شاگردان در میون میذاشت که وقتی با مسیح بوده اونها رو به دست آورده وقتی که پولس نشان داد که یک شاگرده همانطور که و یوحنا بودند شاگردان با پولس و برنابا دست رفاقت میدن و میگن همونقدر که ما شاگرد مسیح هستیم شما هم هستی. شما رسولی هستید که باید به سوی غیر یهودیان و بود پرستان برید و ما هم رسول یهودیان باقی میمونید. اما اگه من بودم اینطور عمل نمیکردم. آیا تا احساس کردید که به خدا میگید؟ میدونی فکر میکنم این بهترین روش نباشه که تو انجام میدید. من فکر می کنم که تو باید منو به اتاق استراتژیت ببری و این رو برای من روشن کنی. من فکر نمی کنم که بتونم این کارو انجام بدم. میبینید که پولس معلم دینی بود. او معلم فریسیان بود. او با رئیس سنهدرین، معلم بزرگ قضا میخورد. در فرهنگ ما برای اینکه شما بخواین با رئیس سنهدرین پای یه سفره بنشینید، باید به دانشگاه بزرگی رفته باشید. به عنوان یه یهودی پولس بهترین تحصیلات الهیاتی رو داشت. او یکی از اعضای سنهدرین بود خب حالا اگه من بودم او رو نزد یهودیا میفرستادم و اون مرد تنومند اون ماهیگیر بی سواد پتروس رو نزد بود پرستا میفرستادم من به پتروس میگفتم نزد بود پرستا برو تو هیچ تحصیلات الهیاتی نداری غیر یهودیان هم زبانهای سامی رو بلد نیستن اگه من بودم یا آدم تحصیل نکرده رو سمت بود پرستا میفرستادم و یه پژوهشگر الهیاتی رو نزد یهودیا میفرستاد، ولی خدا این کار رو نکرد خدا معلم و پژوهشگر رو نزد بود پرستا فرستاد مثل قرنتیان و خیلی از مردم دیگهی که اونها رو خدمت کرد و کسانی که مثل بربرها بودن و از طرفی ماهیگیر بیسوادی رو نزد یهودیان و معلمان یهود فرستاد در باب سوم کتاب اعمال رسولان وقتی که پتروس و یوحنا در وسط سنهدرین نشسته بودن مردی از هترین از خیرد اونها متعجب شده بود و اونها خیره شده بود از توازن پتروس و یوحنا در جواب دادن به پرسش های شورا متعجب شده بود چیزی که تمام اونها می بگن این بود اونها حتما با ایسا بودند این روشیه که خدا از اون طریق کار میکنه اینجوری میشه روش خدا رو درد کرد من این رو میدونم که جاموستی در دانشگاه عالی آکسفورد درس خونده با این تحصیلات عالی وسلی خیلی تحت تاثیر جورج ویتفیلد بوده و با او به مزاره بین کارگران میرفته و معزه می‌کرد. او در بین معدنچیان ولز معزه می‌کرد کسانی که تحصیلات خیلی کمی داشتند. ویتفیلد و وستلی هر دو تحصیل کرده آکسفورد بودند و تصمیم میگیرند تا به میان معدنچیان کسانی که سرتاپاشون از غبار زغال سنگ پوشیده بود برند و اونجا معزه کنند. اونها رگه‌های سفیدی که بر اثر عشق روی صورت هاشون درست می شد میدیدن. همونطور که ویتفیلد و وستی برای اونها معزه می‌کنن، خیلی از اونها ایمان میارند. تقریباً صد سال بعد خدا مردی رو بلند میکنه به اسم دوایت المودی مودی، مودی تحصیلات خیلی کمی داشت، او یک کفاش بود، گرامر و او افتضاح بود. مودی بین تحصیل کرده های انگلیسی معزه میکنه و خیلی از این مردم تحصیل کرده ایمان میارد. در اولین باری که سخنرانی میکرد، به خاطر سخنرانی افتزاهش همه دلخور شدند. اونها با خودشون فکر کردند چرا یک کارگر ساده از امریکا اومده اینجا و برای ما صحبت میکنه. با این حال بعد از حدود ده دقیقه سخنرانی مودی ناگهان انگار صدا از جای دیگه ای می میومد. صدا صدای دیگه ای بود صدایی که انگار سالها با اون آشنا بودن می و ایمان می آوردن. من فکر می کنم که خدا حس شوخ طبیعی داره فکر می کنم که خدا دوست داره این کارها رو انجام بده. من فکر می کنم که خدا دوست داره جورج ویتفیلد و جان وستی رو با اون تحصیلات عالی و لباسهای شیک رسمیشون پیش معدنچیان ببره و دوست داره انسانهایی مثل اونها رو به سمت مزغه ها بفرسته تا برای مردم عادی معایزه کنه. و همون خدا دوست داره شخصی مثل مودی رو با تحصیلات خیلی کم به آکسفورد بفرسته تا اونجا برای افراد تحصیل کرده موعظه کنه این کاریه که خدا انجام میده وقتی که پولس معلم یهودی رو به سوی بدپرستا میفرسته و یک ماهیگیر بی سواد رو نزد معلمین یهودی دقیقا همین کار رو میکنه در باب اول و دوم غلاطیان پولس به ما و به غلاطیان میگه که این روشیه که خدا دوست داره کار کنه در غلاطیان باب یک و دو پولس در مورد مشکل انجیل تحریف شده به راهنمایی میپردازه پولس به اون انجیل تحریف شده میگه انجیل دیگر اینجا خیلی چیزا به عنوان انجیل دیگر وجود داره اینجا فقط یه انجیل وجود داره و اون انجیل انجیلیه که پولس زمانی که به گلاطیه اومده بود اون رو موعظه کرده انجیل دیگه اگه باشه تحریف شده است و به قول پولس اگه کسی اون انجیل رو موعظه کنه باید لعنت بشه بعد پولس در مواجهه با انجیل تحریف شده میگه اجازه بدید چیزی در مورد انجیلی که من موعظه کردم به شما بگم. من اون انجیل رو از مدرسه معلمین یهودی نگرفتم. هیچ کسون رو به من تعلیم نداد. این انجیل چیزی نبود که من در موردش در کتابی خونده باشم. من انجیل رو از خدا گرفتم و از طرف خدا اون رو معیزه کردم. انجیلی که من معیزه کردم از عیسی مسیح گرفتم. توسط وحی مستقیم در عربستان. این دلیلیه که من این انجیل رو این دلیلیه که چرا انجیلی که من مععزه کردم انجیل قطعیه همونطور که قبلا گفتم نامه غلاطیان تنها نامه‌ایه که پولس با دستان خودشون رو نوشته پولس همیشه یک کسی رو داشت که براش نامه‌هاش رو می‌نوشت نیاز بوده که کسی این نامه‌ها رو بنویسه چون او خوب نمیدیده. قبلا در قسمتی به خاری که در جسم او بود اشاره کردیم و او عنوان کرده بود که نور چشماش خیلی کمه و تقریبا نزدیک به نابیناییه در این نامه پولس میگه که این نامه رو با دستان خودش نوشته. پولس وقتی این نامه رو مینوشت خیلی ناراحت بود و نمیتونست منتظر بشینه تا کسی بیاد و اون رو بنویسه. در آخرین با پولس به اونها می نویسه که شاید دستخط او خیلی درشته چون چشماش ضعیفه. تمام چیزایی که در مورد نامه پولس رسول به غلاطیان گفتم فقط در حد معرفی بود. پیام غلاطیان خیلی شبیه پیامیه که ما در رومیان دریافت در کردیم. میتونیم به کتاب غلاطیان رومیان کوتاه شده بگیم. پولس زمانی که این نامه رو مینوشته خیلی احساساتی بوده. چرا او اینقدر احساساتی بود؟ او احساساتی شده بود چون پیام فیضی که اون رو مععزه کرده بود لوس شده بود. یادتون باشه که این نامه ها به توالی و بر اساس تاریخ نگارش اونها در کتاب مقدس قرار نگرفته. اینها براساس بر اساس که دارن در کتاب مقدس طبق بندی شدن. محققان دقیقاً نمیدونند که پولس چه زمانی این نامه رو نوشته و کجا نوشته ولی میدونن که پولس در سومین سفر بشارتیش این نامه رو نوشته بعضیا میگن که او در فیلیپی بوده بعضیا هم میگن که در افسوس و بعضیا میگن در قرنتس بوده ولی اصلا مهم نیست که این نامه کجا نوشته شده این نامه به خاطر محتویاتشه که مهمه این خیلی مهمه که شما نامه به غلاطیان رو با کتاب داوران در عهد عتیق مقایسه کنی اگه یادتون باشه در کتاب داوران ارتداد خیلی وحشتناک توصیف شده. ارتداد امروز هم خیلی وحشتناکه. سالها پیش نورمن وینسنت پیله در مجله ریدرز دایجست نقد کرده بود شما میتونید تمام مشکلات کلیساهای خودمون رو دفن کنید. تمام اونها رو بیرون از در این سمینار دفن کنید چون اونها باعث میشن که الهام، اعتبار و مطلق بودن کلام خدا از دانشجوهای این سمینار دزدیده بشه. نتایج ارتداد اینهاست اگه شما به کتاب مقدس ایمان ندارید، پس چه چیزی رو میخواید موعظه کنید بعد نتیجه این حقیقت که شما انجیل یا کتاب مقدس رو موعظه نمی کنید چیه این پیامیه که پولس در نامه به غلاطیان میده در نامه پولس به غلاطیان، انجیل تحریف شده در سایه انجیلی که پولس زمانی که در غلاطیه بود و اون رو موعظه کرده افشا میشه من شما را با یک تکلیف ترک میکنم ما دیدیم که پولس خیلی عصبانی شده بود چون انجیل داشت تحریف میشد حالا از شما میخوام تا در این نام تفکر کنید و اگه می ببینید انجیل تحریف شده و انجیلی که پولس اون رو می کرده چیه. میدونم که این به شما کمک میکنه تا پیام پولس و پیام انجیل مسیح رو بهتر درک کنید. دوستان خوبم تنها یک انجیل وجود داره و این خبر خوبی برای همه ماست. همونطور که معلم ما دوست داره که بگه ما توسط فیض و از طریق ایمان به اضافه هیچ چیز دیگه ای نجات پیدا کردیم. بعضی هستند هستن که پیام نجات توسط فیض خدا رو تنها بیان می کنند و خیلی با کاری که مسیح اون رو روی صلیب تموم کرد فاصله داره. در زمان پولس کسانی بودند که تلاش میکردند پیام انجیل رو جور دیگی جلوه بدن و از حقیقت ساده خودش دورش کنن. همونطور که ما در جلسی بعدی مطالعه خودمون رو ادامه میدیم فیض مهم خدا که درون زندگی‌های ما از طریق ایمان عمل می رو یاد میگیریم. عزیزان، برنامه زی کنید که با ما باشید. تا جلسی دیگه می که فیض و حرامش خداوند بر شما و خانواده شما قرار بگیره و می خوام که روح اتحاد اون با همه شما در خانواده روحانی خودش باشه. آمین.